حكایت درویشی به مقامی درآمد آمد که صاحب بقعه کریم و نفس بود و خردمند. طایفه اهل فضل و بلاغت در صحبت او هر یکی بزده و لطیفهی چون که رسم حریفان باشد همی گفتند. درویش راه بیابان کرده بود و مانده و چیزی نخورده. یکی از آن میان به طریق ظرافت گفت تو را هم چیزی بباید گفت گفت مرا چون دیگران فضل و ادبی نیست و چیزی نخوندم. به یک بی از من قناعت کنید همگنان به رغبت گفتند بگوی، گفت من گرسنه در برابرم سفره نان همچون عذبم بر در حمام زنان یاران نهایت عجز او بدانستند و سفر پیش آوردند. صاحب دعوت گفت ای یار، زمانی توقف کن که پرستارانم کوفته بریان می سازند. در بیش سر برآورد و گفت، کوفته بر سفری من گو باش، گرسن را نان توهی کوفته است.